و علاقه من قدر برنامه توحید در قرآن و سنت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته با امید از که صحت من باشین و باز هم منتظر برنامه دلخواه خودتان باشین هفتمین برنامه از برنامه های عقیده در قرآن و سنت خدمتان تقدیم میکنیم که موضوعی ای برنامه ایمان با وجود الله جل جل است اصلا دوستای عزیز اگر یک انسان عقل که الله جل جل هو برش داده و حواس که الله جل جل هو برش داده هر کدام ازی بر ما ثابت میکنه که هیچ چیزی در دنیا بدون از که او را کسی ساخته باشه کسی او جور کرده باشه نیست ما اگر مثلا به چاینک و به پیاله آب فکر میکنم پس هیچ چیزی از این تصادفی نیست یا ای که مثلا میبینیم که اینمی سرپوش در سر از اینمی چاینک این هم تصادفی نیست و این نوله ای داره این هم تصادفی نیست این که گرفته شده ای هم تصادفی نیست بلکه وقتی سر هر کدام از این فکر میکنیم به این نتیجه میرسیم که انسان بسیار باهوش و با فکر ای ساخته و به خاطر ازی که ای چاینک از آب جوش پر میباشه اگر دسته داشت شاید ما با مشکل ایره داشتیم، پس برازم این چاینک دسته ایره ساخته تا که ما از این دسته از ای استفاده بکنیم و با بسیار راحت بتانیم که در پیاله خود چای زیر پرتیم اگر احیانا نوله نمیداشت داشت و ما میخواستیم که از امی چاینک آب پرتیم در پیاله خود یا چای خالی بکنیم پس حتما به مشکل مواجه می شدیم باز هم یک عقل ما بر ما میگه که امی انسان دانشمنده که این چاینکه ساخته فکر کرده به خاطر سهولتش که آسان ما تکلیف نبینیم نولهی ساخته که از نولهی از بسیار سادگی به مو اندازه که ما ضرورت داریم دی میریزم اگر احیانا سرپوشش نمی بود باز هم ما با مشکل مواجبه ای میشینیم که احیانا کدام چیزی کدام خس و خاشهی از بیرون میامدن و در داخل چای میریخت و پسان سبب امو کثیف شدن چای میشد پس ما مجبور همیشه یک چیز دیگه پیدا میگیم سرزمی ماندیم لکن همین انسان عشیار و فامیده سرپوش بر برازی جور کرده و این سرپوش سبب ازی شده که ما میفهمیم که ما رو از اون مشکل و از اون تکلیف خلاص کرده. اگر احیان سرپوش می بود و این سرپوش اینی سرکه نمی داشت ما باز هم به با مشکل مواجه می شدیم و اون مشکل این بود که اگر این سرپوش کدام وقتی می خواستیم بگیریم که چای مانده یا نمانده سرخ می بود دست ما را می سوختن به این خاطر این سرپوشک ایچیده که دیگه خوردیر اینجا گذاشته که ما به سادگی می تونیم که این سرپوش بگیریم به شکل این پیاله اگر دسته نمیداشت اگر چاینک می بود و پیاله نمی باز هم ما و مشکل مواجه بودیم به خاطر اینکه اگر چای میخواستیم از چاینک بنوشیم مجبور کلی یک ساعت صبر می‌کردیم تا سرد بشه بر ما مشکل تمام می‌شد پس پیاله ساخته تا پیاله ما استفاده بکنیم و یکی پیاله دسته‌نامه داشت یک قسم می‌گرفتیم شاید دست ما میسخت با هر صورت وقتی هر چیز رو ما میبینیم عقل ما بر ما میگه که در عقب عزی انسان است صاحب فکر که ای جور کرده ای دیزاین کرده و ایر ساخته و به این شکل عقل ما از تصادفی بودن ای چاینک پیاله کاملا بر ما میفهمانه که ای تصادف شده نمیتانه بلکه یک انسان، وشیار و فامیلی بوده که را ساخته و برای سهولت ما ازی خوب استفاده بکنیم پیاله و چای نکس، شکر الحمدلله و ما آب می نوشیم و شکر الله را می کنیم که الله جل جلاله برای زو انسان یقل داد و برای ما هم یقل داد که مازی استفاده بکنیم و وقتی که ما به یک کمپیوتر می بینم فایل است، ایدت اس ویو انزرت فارمات تولز تیبل کل پس اگر یک کسی من میایه و برمان میگه که ولی اینمی کامپیوتر تصادفی است عقل میگه که تو انسان که کمپیوتر را تصادفی فکر میکنی پس من میفهم که اصلا تو انسان بیعقل هستی بخاطر خاطر اینکه هیچ ممکن نیست ولی یک پروفیسور بیاید و برمان بگه که ما چل سال هزارا کتاب نوشته کردیم و ما می که بر تو درس بتم که این کمپیوتر تصادفی است ما برش می که ولو که صد سال دیگه هم درس بیتی ولو که میلیون کتابم هم را بکنی عقل که ما دارم چون ما کامپیوتر کمپیوتر کار می کنم عقل ما بر ما میگه که این کمپیوتر چی است؟ این کمپیوتر تصادفی نیست خب آله سر چاینک فکر کردیم و سر کمپیوتر فکر کردیم پس ما با حس خود، ببینین، الله جل جلاله بر ما یک نعمت داده که نعمت حس است. پس ما با حس خود از کامپیوتر استفاده میکنم و آنچه که, ما میخوایم و که را که می خواهیم در کامپیوتر بگذارم و چیزهایی که در بین کامپیوتر است کل زیر ما یک, یک باز میکنم و می بینم. پس حس ما بر من تمام اینا را با چشم خود می بینم و آوازی که ده ای است ایره با گوش خود می و فایل هایی که داری از تصویری با چشمای خود ای می میبینم بناهن حس باسر ای دید حس سامه ای آواز شونید. که در کمپیوتر کدام صداها هست چیز ثبت از دی و حس لامس با دست خود لمس میکنم و می بینم که والا ای عجب و چیزهای در ای هست و یک یکی با حس لامسه چیز میکنم با حس باسر رو میبینیم با حس سامه امیش خب والا اگر امی تمام برنامه‌ای که در این کامپیوتر اس و سی های را که مدهی گذاشتیم، چیزهایی را که من انستال کردیم، برنامه‌هایی را که من دی گذاشتیم و کتابهایی که نوشته کردیم و مقالاتی که مذهبینی دارم، اگر یک نفر بیه و بر من که برادر اینمی کامپیوتر لپتاپ توی تصادفی هست والو که بر من هیچ کسی دیگه نگوید با حس احساس کردم عقل ما بر من میگه این تصادفی نیست برادر عزیز اگر یک کسی میگم بایی فکر میشم که انسان بسیار انسان بیعقل است و جاهل است کجایی تصادف میشه پس حس ما هم رای ما کمک کرد و عقل ما هم کمک کرد من این برای نقطه سومی که عالی ای کمپیوتر برای لاوی که آنچه حس و عقل ما این نشان داد ای کمپیوتر دیگه چه کمال ها دارن دیگه چه استفاده میشه ای کی ساخته پس میبینیم که برای این کامپیوتر در امراه صندوقی که م گرفته بودم یک کتابچه بود و او کتابچه کتابچه رحنمای از کامپیوتر است که او تمامی آن چی که داری این کار شده و تمامی کیفیت های ازیره و در پالوی ای ازیره بر ما مثلا دکی کی ساخته کدام فابریکه ساخته کل ازیره بر ما میگه پس ببینید از سی چیز استفاده کردیم اول از حس خود استفاده کردم خاطر، چالان کردن از کامپیوتر کمپیوتر و پالیدن فایل های کدام برنامه های وجود دارن دوم از اقل خود اقلم برای من گفت که این, این بر کمپیوتر کس این تصادفی نیست پس از اقل خود هم استفاده کردم و اقلم برساد پس آن اقلم برای, برای من گفت که امی کسی که این کمپیوتر ساخته مرد حیرت نگذاشته پس است که حتما انسان مهربانی است. که اون انسان مهربان وقتی که کمپیوتر ساخته انال بر ما چی میکنه، کنه؟ ما امی انسان عاقل و باز عطمان آقل است اوشیار است و مهربان است و امی انسان عاقل و مهربان در پالوی ازی که کمپیوتر ساخته بر هزی بر ما کار دیگه هم کرده که او چی هسته اونی است که امیکتلاک که ابرایز کامپیوتر سیدام گذاشته که ما میتونیم با کتلاک تمام اهدافی که این کامپیوتر برادزش ساخته شده و فابریکا و شرکتی که ساخته کرده برای ما گفته خب پس اگر تلویزیون رو فکر بکنیم اگر موتر فکر بکنیم اگر تیاره رو فکر بکنیم اگر موبایل را فکر بکنیم اگر راکت را فکر بکنیم یعنی هر چیزی که در دنیا هست ما از سه چیز استفاده میگیریم از حس خود، از عقل خود و باز بعد از, از امو کتلاکه که هدف جور کردن از و شرکتی که او را جور کرده و شرکت دارای چی خصوصیت است، کل زیره ما میتونیم از او کتلاک پیدا بکنیم این آلیم دو چیز دیگه هم است یکی جهان بزرگ است و یکی جهان کوچک است جهان کوچک خود انسان است و جهان بزرگ ای طبیعت است. پس وقتی که کمپیوتر دلیل به ای شد من کامپیوتر سرش قمو فکر کردم به من دلیل شد خود کامپیوتر که یک کسی هست که ای کمپیوتر را ساخته یک کسی هست که ای کسی را ساخته یک کسی هست که ای پیلر را ساخته یک کسی هست که موبایل ساخته یک کسی هست که موتور را ساخته پس ما درباره یک انسان وقت فکر میکنم ببینیم که ای انسان سرازی فکر میگنیم که انسان که ساخته است وقت در هر مخلوقی که ما فکر میکنیم در قلم خود فکر میکنیم عقلم با حس خود قلم ها گرفتم چشمایمی قلم دید <coughs> با حس نامسه ایره لمس کردم پس یک قلم است سرپوش داره عقلم برای ما میگه که این سرپوش هم تصادفی نیست نوک هم تصادفی نیست رنگ از ای هم تصادفی نیست حتی این سراخه که کوچکی که در این قلم گذاشته اند این هم تصادفی به خاطر از این نیست که این قلم باید داخلش هوا بره تا که قی نکنن. پس هر چیز دلالت میکنه که هر سنه دلالت میکنه که سانه وجود داره هر مخلوقی دلالت میکنه که خالقی وجود داره پس کمپیوتر با حس لامسه کمپیوتر لمس کردم برنامه شدیدم عقلم برمه گفت که عقلم برمه گفت که کمپیوتر تصادفی نیست چون این برنامه نمیتونه که تصادفی باشه چون تو میتونه که کلیه ها تصادفی باشه اگر تصادف میبود باید کلش که می میبود عقلمه تصادفی بودن کمپیوتر رد میکنه پس حتما یک کمپیوتر یک کسی ساخته کی ساختش چی مشخصات داره کدام فابریکه هست به چی هدفی را ساخته ایرحم هم من نمی پس رجوع میکنم و کتلاک که در پالوی ازیه هست به سر عالم کوچک انسان است آله می میبینیم که ما به یک انسان نظر میکنم این انسان آیا کمتر است کمپیوتر است وقتی که میبینیم به سر انسان موی انسان است ابروی انسان است برود و ریش است موی در آغاز پیدا میشه د می سر لاکن ریش و برود باز وقتی که جوان میشه پیدا میشه آیا تصادفی است ریش کلان میشه و موی سر کلان میشه و موی ابرو به حالت نورمال خود است آیا تصادفی است عقل میگه خیر ذات حکیمه ای خلق کرده خب بازی که موی خلق کرده پیشون انسان عرق میکنه چشم بسیار چیز ضعیف است چرا چشم در این قسمت نبود اگر از نگاه عقلی ابتدا آدم ساده لوحانه فکر بکنه میگه چشمای از یک اینجمی بود بسیار خوب دیدم میتونست اگر اگر اینجمی بود جاوید جان نمیتونست نمیتونستی کی طرفم خوب ببینید طرفم لکن allele چرا ای چشم ده اینجنی نیست؟ اگر تکر میکد، یک روز سرش را ایک دیوال میخورد، دابینا میشد. لکن ذات حکیم است که ای چشم خواسته که ای چشم ازی حفظ شده و چشم اینجا قرار نداده در داخل یک چکوری که اگر کدام روزی در دیوال می میکنه شاید پیشانیش بترقه لاکن چشمش حفظ شده. آیا موجودت چشم در این سر در این قسمت؟ تصادفی است، اقل میگه نخیر نیست، تصادفی نیست، بلکه ذات حکیم است که ایده خلق کرده عبروها مثل ها واره، چرا خلق شده؟ قطرات از عرق از سرش میه و نمیتونه اگر ای کل عرق ها که از اینجا میه ای کلی چشم بره چشم مبتلا به میکروب میشه، ویروسی میشه و چشم درد میشه و شاید چشمش از بین بره پس وقتی که عرق اینجاست، تو استاب روها این طرف میره. ابروی دیگر عرق این طرف میبره. مثل نواه در بام تصادفی است، عقل میگه نه، نی. تصادفی نیست بلکه ذات خالق هست که ایره با بسیار حکمت در اینجا خلق کرده. در بین چشم آب شور است. چرا در بین چشم آب شور است؟ به خاطر ازی که آب شور که است ایز مکروب است. وقتی که ای امون مکروب هایی که پیدا میشه ما وقتی که گوشت قاق میکنیم در او زیاد نمک میزنیم تا که میکروبی و گنده نشه چشم هم بخاطر خاطر اینکه گنده نشه ما او تو گوشت قاق میکنیم در ایش نمک زیاد میپردیم پس در بین چشم کدام ذات است که آب شور خلق کرده اگر آب شیرین می بود شاید چشم گنده میشد. لکن با آب شور چشم حفظ میشه. پس ای کار کی کرده؟ ذات حکیمه که مهربان از بالای بنده های خود خواسته که بنده از این چشم استفاده بکنه لکن چشمش از بین نره و برای حفظ ازو آب شورده بین چشم است. آیا ای آب برای یک دقیقه از دقیقه نخیر؟ دقیقه و 24 ساعت است. از کمپیوتر که دقیق کار میکنه. کمپیوتر اگر ویروسی شد بعض اوقات برخ رفت کار نمیکنه لاکن ای چشم برقش در کجاست ریموت کنترل جدسته کی هست و چرا 24 ساده ای آب به خاطر که ذات حکیم حفظ میکنه و خلق کرده و ای ذات حکیم میکنه. چرا در گوشهای انسان آب تلخ هست اول پکی گوش وقتی پکی گوش گوش یکی دکتر گفت که گوشهایش اختتافچه چا بوریده بدن وقتی گوشهایش بوریده بدن ای تو پیشروش میبودی پوست پشتر خودت سال میکرد. پس همین ساختمانه که گوش ها داره این ساختمان و گوش ها خود ساختمان و گوش ها برای چی ساختمان و گوش ها برای است که انسان میتونه که ساوده جهتش تا این میتونه تصادفی است میگه نه. چرا تصادفی میبود باید گوشه اینجوری میبود گوش یگ انسان در طرز نقش میبود تصادفی است تصادفی شده نمیتونه به می قسم چرا بینی انسانی قسم است و چرا سراخهای بینی هست اگر تصادفی بود جاوی جان تو باید اگر تصادفی می بود باید بینی سراخهایش طرف آسمان می بود <تصفح> اگر تصادفی می بود باید سراخهایش طرف آسمان می بود پس هیچ چیز تصادف نیست دندان ها در داخل دهان این دندان ها که قسم جای بجای شدن اگر سر هر دندان انسان فکر بکنه. اگر شما دندانیتان مثلا دندان که پیش روی است میده میده است تیستید است دندان که در بغل است مثل آسیا واره است چرا این دندان این قسمت چرا اون دندان او قسم است و چرا کی ساخته و چرا این قسم ترتیب و تنظیمش کرده تصادفی است عقل انسان میگه نیست تصادفی. پس ما با چشم خود هر قسمت از وجود انسان رو ببینیم اگر جاوی جان دست تمی قسم میبود و قات نمیشد نان چه قسم میخوردی؟ مشکل, می مشکل می بود که نان بخوری پس آله الله جل جل هو با حکمت خود بر انسان چیز که نان میگیرین مال میره به بخوا... دانتان اگر نیک نایی بود مجبور مادر و بلادار رو میگفتی که یک لب ما بود دادان تو میکرد تو دا دانه از مجبور یک کس دادم میشن چون دستی طرف نمیشه طرف مجبور یک دا دا میکرد پس اگر پنجه ها قاط نمیشنند کلش راست میبود چی میکردی؟ آیا کمپیوتر کرده میتونیستی؟ نه خیلی نوشتک کرده میتونیستی؟ نه خیلی و مشکلات پس هر انگشت دقیق ترین اناتومی در تپ اناتومی دست است با چیز مهارت. آیا این انگشت یکیش خورد یکیش کلان و قاط میشن و اصطوخان ها و چی میشن آیا کل تصادف است عقل انسان که تصادف نیست بلکه حتما کسی هست که با حکمت همه یه زیر خلق کرده. هر قسمتی بدن تو فکر بکنین. چرا اگر جابهجان احیانا قلب تو ارادی میبود به ارادی خودت می بود مثل دست فایده فایده می کردی یا نقص میکردی کردی به خاطر چی؟ که قلب 24 ساعت کار میکنن و تو مجبور بدی که اینه من خودم پم و تا که مجبور تمام روز ب... شب و روز ب... بیدار میمونی. آها دیگه پس ارادی بودن و غیر ارادی بودن اعضای بدن هم به حکمت الله جل جلاله در وجود انسان ترتیب و تنظیم شده ایناله هر قسمت عضو بدن شما فکر بکنین و در هر عضو بدن انسان دلایل از قدرت الله جل می میبینه پس از این خاطر پس با حس ما احساس کردیم انسان است چشمایش، ابروش گوشش بینیش بعد بعضی میم سر ازی که عقل ما میگه که آیی کل کله‌زی تصادفی است اگر تصادفی بودی چشم یکی ما ده اینجا می بود یکی دیگه چشمش در بغل کلش می بود یکی دیگه چشمش در تخت پشتش می بود تصادفی اما تصادفی نیست کلا اگه چیره منظم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقفیم انسانم ما الله جل جل که ما خلق کردیم انسانم با چیره بسیار زیبا تمام اعضای بدن ازی ما هستن خب آل انسان برای چی خلق شده؟ انسان کی خلق کرده؟ به چی هدف خلق کرده؟ از کجا این انسان آمد؟ به کجا میره؟ آیا کتلاکی؟ کسی که انسان را خلق کرده کتلاک هم به امروش فرستاده بله کتلاک هم است و او قرآن ازیم و است که خالق انسان و خالق جهان او را فرستاده تا که با دیدن ازی انسان میتونه که بفهمه که انسان هدفش چیز بر چی پیدا شده الله جل جل همه که لقد خلق را الانسان فی احسن تقویم ولقد لقد کرم را بنیادم آدم ماهر کرامت دادیم و انسان و ما خلقت الانس والجن ایلا لیعبدون اینا به خاطر عبادت خلق کردیم مسیرشان کجا هست بعد از مرک چی میشه تمام ازیره ما از قرآن میفهمیم پس وقتی به جهان کوچک انسان بود عقل ما بر ما گفت که انسان تصادفی نیست و انسان خالق خلق کرده با بسیار حکمت و ذات رحمان رحیم و مهربان است که هر چیز منظم بر ما را آماده ساخته وقتی میعیم به جهان بزرگ آنچه در عالم است در آدم است آنچه در آدم است در عالم است آب شور در چشم من هست آب شور در جهان هم است آب شیرین در زبان من هست در جهان هم آب شیرین است آب تلخ در گوش من هست آب تلخ در آب تلخ در جهان هم است پس وقتی که ما میییم وقتی که ما میایم جهان میبینیم میبینیم که الله جلجاله بر ما چی قسمی رو خلق کرده این جهان وقتی که میبینیم که ها سیارات، آفتاب، محتاب، شب، روز هر کدام زیر که انسان فکر بکنه این جهان با این بزرگی این کوها، این زمین این سنگها، خاک درختها یا کلشان برگ درختان سبز در نظر اوشیار، هر ورقش دفتر است معرفت کردگار پس تمام از اینار وقتی که ما دربارش فکر بکنیم هیچ چیز تصادفی نیست هیچ چیز تصادفی نیست ازی خاطر الله جل جلاله بر ما چی میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات و اختلاف واختلاف الليل و النهار ان یقینا که در فی خلق السماوات در خلقت آسمان ها و زمین و اختلاف لیل و نهار و اختلاف شب و روز و التي الاتی في البحر کشتی که در بحر میره بما فا الناس که مردم نفع برش میره وما انزل الله من السماء من ما و که الله از آسمان آب که فرستاده در بین از عبرها آب آمده فا به الارد پس زمین مردر دوباره زنده میسازه سازه بعد موتها و بثه فیها من کل دابه و در دنیا هر قسم جنبنده منتشر ساخته و تصریف ریاح گشتیدن بادها و صحاب المسخری بین سمای و و عبرهای که در آسمان و بین آسمان زمین مسخر شدن لآیات لقومی عقلون کلش دلائل و علاماتی هستن بر كساني که عقل دارن که بله اینا خالقی دارن پس جهان وقتی که میبینیم حتما ایره کسی خلق کرده کی خلق کرده؟ کدام ذات است دارای چی صفات است؟ پس میریم به قرآن مشان و قرآن مشان همه را برای ما بیان میکنه پس خلاصه ای که خالقی وجود داره و منکر از وجود خالق کسی است که منکر عقل است منکر حس است و در نهای درجه جهالت قرار داره دوستان عزیز از که وقت برنامه ما رو به باز بازم با شما دوستان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.